هزار اخسان بنامه خدای یگانی مهربان سلام اوقات خوش و سرشار از سلامت و آرامش برای شما آرزو میکنیم در این مجال افثانه ای رو براتون نهر میکنم نام مرد که برگرفته برگرفت از کتاب قصه مردم خوزستان گردآوری پرویز تلاییان افسانه مرد کفش دوز در استان خوزستان بین مردمان خوب شهرستان هنجیجان رایجه امیدوارم این افسانه جنوبی رو بشنوید و شنیدن اون لذت ببرید در گذشته دور مرد کفش دوسی زندگی میکرد که درآمد زیادی نداشت و هرچه کار و تلاش میکرد پول زیادی نصیبش نمیشد و از این بابت مادرش همیشه قرولوند میکرد و میگفته اه این چه زندگیه که مادر من دیگه خسته شدم. از صبح تا شب کفش وصله میکنی ولی چند پول سیاه بیشتر به دست نمیاری باید آید بوله بیشتری در بیاری پسر جان و مرد بیچاره هرچه باز تلاش میکرد وضعشون همون بود که بود و سرانجام وقتی که واقعا خودش هم از این وز کلافه شد با خودش گفت آه دیگه از این زندگی خسته شدم واقعا خسته شدم باید به جایی برم که نداری و فقر نباشه خلاصه مرد کفشدوز راهشو گرفت و رفت و رفت تا رسید به یه دوراهی مرد کفشدوز در کنار کوهی پیرمردی رو دید پیرمرد از احوال مرد کفشدوز پرسید مرد کفشدوز هم گفتم آره از دست قرولند های مادرم خسته شدم اومدم یه جایی برم که هیچ فقری نباشه پیرمرد مرد گفت من میتونم بهت کمک کنم مرد کفشتوز با خوشحالی گفت واقعا واقعا تو میتونی به من کمک کنی چجوری پیرمرد گفت این راه رو میگیری تا میرسی به جایی که یه سیاه زنگی نشسته با احترام بهش سلام کن و مشکل خودتو به اون بگو مرد کفشتوز گفت اون, اون سیاه زنگی میتونه به من کمک کنه پیرمرد آروم سری تکوند و گفت البته البته و مرد کفش دوز از پیرمرد تشکر کرد و رایو که پیرمرد نشونش داده بود در پیش گرفت و رفت مرد کفشتوز رفت و رفت تا به سیاه زنگی رسید با احترام جلو رفت و سلام کرد و مرد سیاه زنگی هم با خوشرویی جواب سلام شد داد و از مرد کفشتوز پرسید برای چی به اینجا اومدی؟ مرد کفشتوز گفت اومدم تا به من کمک کنی سیاه زنگی پرسید چه کمکی؟ مشکل چی داری؟ و مرد کفشتوز تمام ماجرای زندگیشو برای سیاه زنگی تعریف کرد و از اون خواست تا بهش کمک کنه به جایی بره که هیچ فقر و نداری نباشه سیاه زنگی گفت چاره مشکل تو اینه که به پایین کوهی بری که شهری در اونجا بنا شده توی اون شهر هیچ فقیری وجود نداره و همه مردم اونجا پولدار و تاجرند مرد کفشدوز با خوشحالی از سیاه زنگی تشکر کرد و به راه افتاد و به همون جایی رسید که سیاه زنگی گفته بود. شهری زیبا و دیدنی مرد کفشتوز وارد شهر که شد بچههایی که توی کوچه در حال بازی بودن دورشو گرفتن و با دیدن لباس های کهنه و پاره اون شروع کردن به فریاد زدن و چرخیدن به دور مرد کفشتوز اونا فریاد میزدن یه فقیر یه فقیر یه فقیر اومده یه فقیر هر کدوم از بچه ها چیزی از مرد کفشتوز میپرسید مرد کفشتوز با حیرت به بچه ها نگاه می و نمی دونست چی بگه تا اینکه مردی از راه رسید و بچه ها رو از مرد کفشتوز دور کرد و بعد از مرد کفشتوز پرسید ای مرد از کجا اومدی؟ اینجا چیکار داری؟ مرد کفشتوز با ناراحتی جواب داد از فقر رو نداری به این شهر اومدم می پولدار بشم مرد نگاهی به سر و شفته و پریشون مرد کفش‌دوز انداخت و گفت خب شاید من بتونم برات کاری بکنم بیا بیا به خونه‌ی من بریم اونجا بیشتر با هم صحبت میکنیم و بعد دست مرد کفش‌دوزو گرفت و اونو به خونه خودش برد تا چاره‌ای برای مشکلش پیدا کنه مرد غریبه مرد کفشتوز رو به خونه خودش برد و بعد از پذیرایی از اون پرسید خب میتونی به من بگی چرا حال روزت اینجوریه مرد کفشتوز آهی کشید و گفت همش از فقر و نداری برادر مرد گفت بسه نخور من تا جایی که بتونم مشکل تو رو حل میکنم بعد بلند شد یه دست لباس تمیز و آراسته به مرد کفش دوز داد و گفت فردا اول وقت این لباس های نو رو میپوشی و از شهر خارج میشی مرد کفش دوز با تعجب پرسید از شهر خارج میشم ولی من تازه به این شهر اومدم و میخوام مرد غریبه کلام مرد کفشتوز رو قطع کرد و گفت می دونم, می دونم ولی ولی تو باید فردا از شهر بیرون بری و دوباره به شهر وارد بشی مرد کفشتوز با حیرت به مرد غریبه نگاه انداخت و پرسید چی من از شهر خارج بشم و دوباره وارد شهر بشم این کار, این این کار چه مزیتی داره؟ مرد غریبه گفت ها مزیتش رو فردا قبل از خارج شدن از شهر بهت نیگم حالا بهتر کمی استراحت کنی و دیگه قصه نداری و فقر رو نخوری اگه خدا بخواد همه چی درست میشه مرد که که کمی امیدوار شده بود به مرد غریبه گفت ازت ممنونم برادر ممنونم و بعد رفت تا کمی استراحت کن و خودشو برای فردا فردای اون روز مرد غریبه یکی پول و یه اسب زیبا با زین و یراق قشنگ به مرد کفتوز داد و بهش گفت تو فورا از شهر خارج شو بعد لباس نو و ای رو که داری بپوشو دوباره وارد شهر شو منم تو شهر جار میزنم که پسر برادرم که خیلی هم و از بازرگانان معروف هنده اومده مرد دوست پرسید پس یعنی من پسر بردر تو هم؟ مرد غریبه گفت بله بله و از بازرگانان معروف هند این یادت باشه مرد غریبه ادامه داده گفت وقتی من جار زدم که پسر برادرم اومده همه مردم شهر به استقبال تو میان و تو به محض ورود به شهر خودت رو به پای من بنداز و آه و ناله سر بده و من از حال برادرم که یعنی پدر توه سوال میکنم اما تو فقط آه و ناله کن مرد که افتوز که هنوز نفهمیده بود که منظور مرد غریبه از این حرفا چیه با تردید گفت باشه هر هرچی شما بگید، فردای اون روز همه افرادیو افرادی که مرد غریبه دعوت کرده بود به استقبال مرد کفشتوز رفتند و مرد کفشدوز هم همونطوری که مرد غریبه بهش گفته بود عمل کرد و مرتب از کیسش پول در می آورد و بین مردم پخش می کرد. مردم شهر از بخشش مرد کفشتوز که حالا دیگه اسمش احمد شده بود تعریف و تمجید می براسه مرد کفشتوز یا همون احمد تا رسیدن به خونه مرد غریبه دیگه حتی یه سکم توی یکیسش باقی نموند و همه رو بین مردم تخصیم چند روز بعد احمد یا همون مرد که دوز به گفته یه مرد غریبه پیش یکی از تاجرای شهر رفت و گفت کشتیای من تو راهه من فعلا به دو هزار تومان احتیاج دارم هر وقت کالاهای من رسید قرض شما رو میدم و بعد پول را از تاجر گرفت و به خونه ی مرد غریبه اومد خلاص احمد هر روز پیش یکی از تاجرای شهر میرفت و مقداری پول از اونا قرض میگرفت و به اونا میگفت قرار کشتی کالاهای من همین روزا برسه اون وقت قرض شما رو میدم مدتی گذشت این ماجرا به گوش پادشاه رسید پادشاه هم یه شب مرد غریب رو دعوت کرد و بهش گفت فردا شب به همراه پسر برادرت به قصر من بیا مرد غریبم پذیرفت و فردا شب به همراه احمد یا همون مرد کف‌دوز که به ظاهر پسر برادرش بود نزد پادشاه رفتند پادشاه از اوضاع احوال احمد پرسید و احمد هم به درو گفت جناب پادشاه من دهها کشتی پر از کالا و چند کاروان شطور و شمار زیادی کنیز و غلام دارم پادشاه که این حرف رو از زبون احمد شنید آهسته در گوش وزیرش که کنارش نشسته بود گفت ای وزیر این مرد با این همه ثروت؟ چه هدیهی لایق اونه که من بهش بدم ها؟ اون همه چیز داره؟ وزیر فکری کرد و گفت قربان به نظر بنده خلاصه پادشا که فکر میکرد احمد بزرگترین و ثروتمندترین تاجر روی زمینه فورا به مرد غریبه گفت من حاضرم دخترم رو به عقد پسر برادر شما در بیارم. نظرت چیه؟ مرد غریبه که انتظار شنیدن چون این حرفی رو از پادشاه نداشت کمی خودش رو جا کرد و خواست به پادشاه بگه که این مرد پسر برادر اون نیست ولی جرأت نکرد حقیقت رو به پادشاه بگه بنابراین به ظاهر با خوشحالی به پادشاه گفت قربان این این این وسعت مایه افتخار ماست و خلاصه پادشاه چند روز بعد دخترشو به عقد احمد یا همون مرد کفش دوست درآورد داتی گذشت یک ماه دو ماه شش ماه ولی هیچ خبری از کالاها و های احمد نشد که نشد در این موقع تعدادی از تجار شهر که احمد از اونا پول قرض کرده بود نزد دختر پادشاه رفتن و ماجرا رو براش تعریف کردن و گفتن ما پولمونو رو می‌خوایم ولی جرأت نمیکنیم به شوهر شما حرفی بزنیم هرچی باشه اون الان دیگه داماد پادشاهه دختر پادشاه که زن احمد باشه به تجار طلبکار گفت من امشب با شوهرم حرف میزنم و قول میدم در اولین فرصت پول و طلب شما رو پرداخت کنه و تجار طلبکار که کمی اطمینان پیدا کرده بودن که بلاخره مال و پول از دست رفتشون و به دست میارن، از دختر پادشاه خداحافظی کردن و رفتن شب که شد دختر پادشاه به شوهرش که همون مرد کفش دوز باشه گفت مرد این چه کاری که انجام دادی چرا از این اون پول غرص کردی و بهشون نمیدی تو اصلا فکر آبوی ما رو نمی کنی اصلا ببینم اون کشتی تو کی میرسن؟ اون کالا ها و مال و تجاری که از اون صحبت می کجاست ها میتونی من بگی مرد با لحن آرومی گفت میتونی میتونی من زن پرسید تو چی بگو مرد با نارتی گفت اصلا من هیچ مال و ندارم من فقط یک کفش دوز فقیر و بیچیزم و بعد تمام ماجرای زندگیش رو برای زنش تعریف کرد زن که دلش به حال شوهرش سوخته بود اونو دلداری داد و گفت خب حالا دیر نشده من یه اسب برات آماده میکنم تو فوراً باید از اینجا بری و مرد که چاری نداشت پذیرفت و قبل از سلوه آفتاب سوار بر اسبش شد و رفت چند روزی که گذشت اطرافیان و دختر از اون پرسیدن که شوهرت کجا رفته؟ دخترم در جواب گفت شوهرم دنبال کشتی کالاهاش رفته خبر رسیده که اونا رو توقیف کردن. پادشاه با ناراحتی گفت دخترم چرا ما رو خبر نکردی؟ دختر گفت پدرجان شوهرم میخواست خودش به تنهایی این کار رو انجام بده. و خلاصه اطرافیان حرف دختر رو باور کردند و منتظر اومدن احمد یا همون مرد کفشدوز شدند و اما بشنوید از احمد احمد رفت و رفت تا بعد از ده دوازده روز نزدیک روستایی رسید و پیرمردی رو دید که در حال شخل زدنه احمد با احترام جلو رفت و به پیرمرد گفت پدرجان کمی غذا داری به من بدی خیلی گرستم مرد نگاهی به احمد انداخت و گفت من فعلا چیزی برای خوردن ندارم صبر کن تا موقع شام تو رو به خونه خودم میبرم تا غذا بخوری احمد گفت اما پدرجا من خیلی گرستمه. نمیتونم تا شب صبر کنم بعد فکری کرد و سکه ای رو به مرد داد و گفت خواهشی از تو دارم از گرسنگی نمیتونم راه برم بیا این سکه طلا رو بگیر و از روستا برای من غذا بخر و بیار. تا تو, تو برگردی منم به جای تو زمین رو شخ میزنم. مرد که حال زار احمد رو دید سکه طلا رو گرفت و به طرف روستا برافتاد. با رفتن مرد احمد شروع کرد به شخ زدن زمین که یه دفعه تیغه خیش به زنجیری زیر خاک برخورد کرد. و صدایی از اون به گوش رسید احمد زنجیر رو به گردن گرفت دید زنجیر به داخل سردابی رفت احمد هم پایین رفت و دید صندوقی روی تخت قرار داره صندوق باز کرد دید صندوق کوچیکی داخل اونه فورا صندوق باز کرد دید داخل اون انگشتر خیلی زیبا و ارزشمندی قرار داره احمد بی اختیار. انگشتر رو توی انگشتش کرد و به محض اینکه انگشتر توی انگوشتش قرار گرفت یه دفعه دوتا قول جلوش ظاهر شده احمد که نزدیک بود از ترس پس بیفته خودش رو عقب کشید و از ترس زبونش بند اومد دوتا قول که ترس احمد رو دیدن با مهرمونی گفتن نترس ارباب نترس ما در خدمت شماییم حالا هر کاری داشته باشی برای شما انجام میدیم ارباب. احمد که حالا دیگه ترسش ریخته بود نگاهی به دو تا قول که آروم در مقابلش ایستاده بودن انداخت و گفت شما؟ شما واقعا میتونین هر کاری بگم انجام بدین؟ دو تا قول لبخندی زدن و با مهرمونی جواب دادن <تصفيق> البته ارباب البته پس من صد خیمه زرنگار و چند کنیز و غلام میخوام و هنوز حرف احمد تموم نشده بود که صد خیمه زرنگار و چند کنیز و نوکر در مقابلش ظاهر شدن دوتا قول از احمد پرسیدند ارباب آرزوی دیگه ای دارین؟ احمد بتونی گفت بله بله بله بله من من پنجاه کشتی پر از مال و تجاره روی دریا میخوام با صد تا چطور. دو تا قول در عرض چند دقیقه پنجاه کشتی پر از مال و تجاره و صد شتر رو برای احمد ماهگیا کردن در این موقع مردی که برای خرید غذا و آزوقه به روسا رفته بود نزد احمد برگشت با تعجب و حیرت به خیمه ها و کنیزان و غلامانی که به خدمت ایستاده بودن خیرمون احمد به محض دیدن اون گفت مزرعت چقدر محصول داره مرد گفت پنجاه سکه تلا احمد گفت من پنصد سکه تلا به تو میدم مزرعه مال خودت چون خیمگاه من بخشی از زمین تو را خراب کرده الگسه مرد پانصد سکی طلا رو از احمد گرفت و اونو دعا کرد احمد هم خیمه ها رو جمع کرد و براد به دریا رفت و دید که پنجاه کشی پر از مال و تجارش روی آب در حرکتم، فورا نامی به زنش نوشت و به دست نوکرش و گفت. این نامه رو یه راست میدی دست زنم و بهش میگی تمام مال و تجاره و امبار خودم رو پس گرفتم. نوکرم اطاعت ام کرد و رفت ساعتی بعد خبر به گوش پادشاه رسید که بله، دامادش، با پنجاه کشتی پر از مال و تجاره ست یه زرنگار و پنجاه شطور برگشته. پادشاه هم اموی احمد و تاجرای دیگر رو جمع کرد و به پیشواز احمد رفتن احمد اموی خودش رو کنار کشید و آهسته بهش گفت من از تو خیلی سپاس گذارم اگه تو خودت خودتو جای اموی من معرفی نکرده بودی و به من کمک نکرده بودی من الان همون مرد کفشتوز فقیر و بیچیز بودم من این لطف بزرگواری تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم و احساس میکنم تو اموگه واقعی من هستی و من برادر زاده تو. و بعد به پاس لطف مرد ده شطر و ده خیمه زرنگار و همراه چند کنیز غلام به اون داد. یکی دو روزی که گذشت احمد بیاد مادرش افتاد و به زنش که همون دختر پادشاه بود گفت من باید مادرمون اینجا بیارم. به مراقبت نیاز داره و بعد یکی از غلامان فرستاد تا بره و مادرشو بیاره فردهای اون روز مادر احمد از راه رسید و احمد تمام ماجرا رو برای مادرش بازگو کرد و گفت مادرشان دیگه از اون زندگی پر از فقر و نداری نجات پیدا کردیم از امروز ما در کنار هم زندگی راحت و خوبی خواهیم داشت. خلاصه اونا سالهای سال در کنار هم در آسایش آرامش زندگی کردند و قدردان همدیگه بودند بود از مردمان خونگرم جنوب کشورمون به نام مرد کاشف دوز بر از کتاب قصه های مردم خوزستان به گردآوری پرویز طلایان که در بین مردم شهرستان هندیجان رایج برای شما سلامتی نشاط آرامش و موفقیت آرزو هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صابکو ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی سدر شیما کمیلی زاده کننده زهرا عبدالله زاده پترو